حکایت، ملک گنج فراوان از پدر می یافت، دست کرم برگشاد و داد سخاوت بداد و نعمت بی بر سپاه و رعیت بریخت، نیاساید مشام از تبله اود، بر تشن که چون انبر ببوید بزرگی بایدت بخشندگی کن، که دانه تا نیفشانی نروید. یکی از جلسای بی تدبیر نصیحتش آغاز کرد که ملوک پیشین مرین نعمت را به سعی اندوختند و برای مسلحتی نهاده دست از این حرکت کوتاه کن که واقعهها در پیش است و دشمنان از پس، نباید که وقت حاجت، فرو مانی، اگر گنجی کنی بر آمیان بخش، رسد هر کت خدایی را برنجی، چرا نستانی از هر یک جوی سیم که گرد آید را هر وقت، گنجی ملک روی از این سخن به هم برآورد و مرو را زجر فرمود و گفت، مرا خداوند تعالی، مالک این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم، نپاس بن که نگاه دارم، قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت، نوشین روان نمود که نام نکو گذاشت.